جلسه دوم قباید فقه و سیاستم هفته مهره هزار و چهار ست. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بسن الله علا سیدنا و نبینا عبدالقاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیم و بقیت الله فلعرضین روحی و عرواح العالمین فدا. با توکل بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل وید السلام بحث رو آغاز میکنیم در بحث قبل ما یه مقداری به تعریف قاعده پرداختیم و یه بحثی هم بحث لغوی و استلاحی و یه بحثی هم مطرح شد که بحث زابط است آیا این رو به کار ببریم به کار نبریم بعضی بزرگواران یه اشاره کردن از جمله در این کتاب قواعد و اصول فقه خب کتاب‌های اختصاصی فراوانی در مورد قواعد داریم حالا من به عنوان نمونه این کتاب رو معرفی کردم که از یه جهت هم تا نرفتیم جلو میخوام بر این قسمتش یک معرفی بکنم این کتاب رو از جنبه دیگه کمک میکنم این, که این کتاب من فهرست رو نشان میدم بوده هفته دو قاعده اصولی رو وردن اگر میخواید با شروع درس خارج آماده تر باشید یه مقداری با تسلط بهتری بر مباحث اصولی وارد بشید فیل جمله خوبه چون تا در بحث کتاب کفایی شما ارز کنیم که مبانی آخوند و ما قبل مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه مطرح شده این کتاب سعی کرده هم قاعده قایده بکنه جنبه کاربردی و تطبیقی هم داره و همین که یه مقدار اقوال ما آخوند رو هم اوورده بحث جدا جدا است البته تقریبا تو سیر همون اصول فقه رایجه برال مواز الفاظ و بعد میره جلوتر اما یه مقداری جنبه تطبیقیش خوبه کتاب اصول فقه. کار دیگه ای هم که ما داریم جنب آقای محمد حسن جواهری دارن کتاب جلدی اونم از این جهت خوب دوستان ملازب فرمایید حالا من برای اینکه که آشنابشی درس کردم این فل جمله خوبه. البته کتاب اصول فقه کاربردی و تطبیقی بزرگواری هم هستند. فکر کنم رئیس انجمن حوزه یا دبیر انجمن اصول فقه و هم. با وجای محمدی اگر اشتباه نکونم شنیدم کتاب اینطوری هم دارن. حداقل این دو سه کتاب خوبه. حالا ما این قسمت رو که عرض کردیم خب این بحث رو تکمیل کنیم که این زابطه و قاعده به این مناسبت ما یه توضیح کلی بدیم قواعد چند نوعند در واقع یه سری قواعد آمند و برای کل فقه هستند یه سری قواعد داریم برای عبواب متعددند و نه برای کل فقه چونکه موضوعشون مثلا فرض کنین عبادیه دیگه خب عبادات دیگه رفتی معاملات نداره بعضشون محدود به یه بابند یا اگر اون قسمت های اون تقسیم چارگانه مرحوم محقق رو که در شرایع آمده بعد صاحب جواهر هم که همون رو شهر فرموده اون چارگانه عبادات معاملات اقود و احکامه نامده و کتاب های دیگه خب آیا همه قواعد در این چارگانه میان یا در یه بخش میان در یه بخش نمیان پس یه سری از قواعد مربوط به کل فقه یه سری قواعد مربوط به ابواب متعدده یه سری قواعد مربوط به یک باب چه بسا برخی از قواعدم مربوط به یک زیربخشی از یک قاعده خب بعضی از این اهل سنت دیدیم که به اون موارد محدود که اختصاص به یک باب داره گفتن ضابطه است خب چونکه حالا فضای بحث لزو... خیلی وسیع نشده بعضیا نپسندیدند دیدن به ویژه تو فضای محاسن از جمله آقای اندلیب که اینجا نپسندیدند دیدن اما به هر حال صرف مستحدث بودن که کفایت نمیکنه کنه برای اصطلاح نشد یه دید اصطلاح میکنن برای اصطلاحات برای تسهیل تفاهم اشکال ندارم خب یه مسئله بود که گذشتنه اما یک نکته اساسی این که اینها چه مواردی رو دارن این کتاب شناسی رو که ما معرفی کردیم فقط اگر فهرستش رو ببینید البته این چاپ اولش که در این نرم افزار هست با چاپ بعدیش تفاوت داره نظمش رو به تغییر دادن در اینجا نظم موضوعیش دادن در اونجا فکر میکنم نظم کل کتاب به صورت الفبایی به نظرم ببینید الان اینجا این تقسیم رو ببینید فعل جمله خواسته اون قواعد رو یک سیری بده یه دستبندی بکنه یه دسته رو گذاشته مبادی احکام اینو یه مقدار جنبه مثلا ممکنه بگیم فلسفه فقهی داشته باشن اصول فقهی داشته باشن چند مورد رو اوورده الاحکام تابعتون لیل الاحکام یحتاج الا مقتزن حدوسن و بقاعن صبات الاحکام شریعه، از سببیه و والمعرفی، المعرفیه و المعرفیه ما تصویر نداریم دو احتمالا خارج شده یه جایی من دوباره شیرش میکنم خدمه شما ارز کنم یه سری پس از این موارد البته نبیدم چرا اینجا ببینید مثلا الملازمه بین الحکم العقل و حکم شر یه مقداری شاید جنبه اصولی داشته باشه جنبه فلسف داشته باشه خب این تقسیم که بعد یه سری قواعد در کتب قواعد هست که اصطلاح کتب قواعدن حالا بعضی کتب قواعد سیرش رو هم عرض اشارتاً باید بطرح کنیم که لزوماً قاعده فقهی نیستن این قسمت دوم توی این چاپ رو آوردن قواعد عام. لیست بالا خیلی وسع ها که خیلی جاهاست. مونتا در میان ها یه سری قواعد عام اهمیت بیشتری شاید داشته باشه یا رواج بیشتری داشته باشه. ببینید لیست خیلی بلند بالا. مثلا اضطرار، اکراه لازرر اینا شاید مشهور ترین قواعد آم باشن اما این بزرگواران سعی کردن قواعد آمی آم رو بیارن که به درد کل فقه بود مثلا اهم و مهم تقییه و سایر قواعد بدعت و تشریح حرامون خب بعضی از این قواهیت همچون تو کتاب کتاب فقی عمدتا تو فضای اهل سنت این تعابیر به قول اون آقایان تعابیر فشوردهی خلاصه هست بیشتر مثلا این نما تو تبرال عاده ازا اتردد او غلبت این معمولا این تیپ سیاقت ها تو کتاب فقی اهل سنت اینا هم چون که مرخص شناسی میکنند محورشون کتاب شیعه ولی خیلی از اون کتاب شیعه اختباس هایی یا مشابهت هایی داره با کتب اهل سنت و لذا این تعبویر اینجا وجود دارد. پس یه سری قواعد عام داریم یه سری قواعد عبادات داریم خب بزرگواران دستبندی کردن قواعد اقود و ایقاد قواعد بی و خیارات قواعد ملکیت و سایر موارد حالا این دستبندی هاشون بعضی موارد جزئی هم آوردن تو اینجا خب ما یه قسمت قواعد حکومت و ولایت داریم که بعد با این کار خواهیم داشت حالا بعد عرض خواهیم کرد در اوند لیستش و اینا خب پس اصل نکته این که یه سری قواعد عام یه سری قواعد اختصاصی یک باب یا چند باب جناب استاد رشاد یه اسطلاح ای دارن قواعد شامله قواعد عام قواعد خ... خ... خاص و مختص به نظرم قواعد شامل و حالا آم یه تعریف ریزی دارن فل جمله ناظر به همینه خب پس این رو همه بزرگواران خودشون در من توجه دارید مثلا قواعد قضا خب این مثلا اینا محدود به بحث قضایه من نکته که میخوام از این استفاده بکنم مربوط به نظم دانش و دروسه ما قواعد رو کجا باید بحث بکنیم الان رایج هست هم در فضای نظام درسی اهل سنت که من خیلی از نظام های درسشون دیدم تو کشور مختلف و درس این نظام های آموزشی و همینطور در فضای معاصر ما قبلا خب به این صورت نبود خب درس های قواعد نبود الان گذاشته میشه مثلا درس قواعد فقی تو مدارس فقی گذاشته میشه یه مسئله پس اینه که ما در نظام درسی باید جای قواعد رو کجا قرار بدیم یک مسئله هم اینه که خب در نظام دانش کجا باید باشه این برمیگرده حل این مسئله برمیگرده به اون محتوی قاعده که ما عرض کردیم اگر گفتیم که قاعده یک تعبیر عامه یک امر کلی که بر مصادیق منطبق میشه حالا این رو هم عرض کردیم که نسبیه جناب آقای علی دوستم در میانه حالا این آقایان دیدم اشاره به این نسبی بودن میکنن شاید بعضی بزرگواران ندیدم حالا باید تفحص بیشتر میکنیم چه واسه بعضی فرموده باشن خب این کتب قواعد یک دو سه قواهد رو پشت سرم میارن حالا بعضی موقع نظم خاصی هم نداره بعضی ها خواستن دستبندی بکنن مثلا کتاب آقای بجنوردی بجنوردی تعداد هفته اشتاد تا شست هفته تا یادم رفتال داره دقیقا چند تا قایده در وردن در چند جلد یکی از مشهور تری منابه یکی از موارد مرحوم کاشانیه خب ایشان مواردی رو ورده سر که دستبندی بکنه دست دستبندی بکنه خب این چه ویژگی باید به ما کمک بکنه که ما ببینیم جای قواعد در نظام دانشی کجاست به نظر من میرسه بر اساس این دستبندی که ارس کردیم بعض از قواعد آمه قواعد عام قراره در کل فقه استفاده بشه پس اگر ما میخوایم دانش فقر داشته باشیم این قواعد عام رو اگر در باب علف بیاریم میگیم آقا در باب ب و باب جیم و باب دال هر نوع دستبندی که میخواییم برای ابواب بکنیم آقا اونجا چی؟ اونجا هم هستش دیگه ممکنه شما بگید آقا برگرد اونجا که من بحث کردم به اونجا ارجاب بدیم مثل المیزان که به ترتیب که اومدن بعضی از مباحث رو یه جایی برجسته فرمودن. در جاهای دیگه به هر حال مورد نیاز هست دیگه نمیشه که تکرار بکنن کل بحث رو یه اشاره‌ای به تناسب بحث بعد بکنن ولی ارجاع داده بشه به اون قسمت اصلی این یک نصف سبک میتونه باشه یه سبک چه بسا بهتر باشه قواعد عام رو قبل از به ورود به مجموعه ابواب بحث بکنیم یعنی مثلا اگر کسی میخواه از شروع بکنه این قواعد آم باید ما قبل باشه اگر میخواه از و تقلید بحث رو شروع بکنه کتاب پنجا جلدی بنویسه این قواعد آم باید قبلش باشه خب قواعد مربوط به اکثر ابوابم چه بسا باز همینجا باید باشه قواعد عام و اکثری اما قواعد مربوط به هر باب چی؟ شما مثلا میخواید در سوم بحث کنید در قاعده قرار 100 تا مستاق دویست تا مستاق پنجا تا مستاق داشته باشه آیا در لابلای بحث بحث بشه بهتره یا اول هر باب طبق این بیان باید طبیعتاً اول هر باب بحث بشه این نظم بهتری داره چون که لابلای بحث شما میخواید از اون استفاده کنید مسئله یک مسئله 20، مسئله 50، مسئله 100. پس بهتر اول کار قواعد مربوط به اون با بحث بشه. خب شما خاطرتون هست در بحث مرحوم نراقی در اوعدال هر هرچند هر آعاده ربطی به آعادده قبل و بر نداره اما در آده پنجنج و چهار که بحث فرمودن اول آمدن گفتن که ما میخوایم تأسیس قاعده بکنیم روایتی رو اووردن دو سه صفحه دو تا قاعده برای به لطقی تیز بعد گفتن آقا چرا این کار می کنیمیم بعدا از این استفاده کنیم نق مستاخ, مستاخ که رفتن جلو در بحث ولایت افتا در بحث ولایت قضا در بحث ولایت بر اجرای حدود و تعذیرات بعد در چند مستاق از امور حسفیه در باب اموال و مسائل مربوط به صفیح مربوط به مجنون مربوط به صغیر، هی تمثب می فرموندن اکثرا می فرموندن لیل قایدتن لیل قایدتن لیل قاعدتان و بعد بعد از اینکه که تطبیق می اون دو تا رو می آمدن عدل خاص رو هم زگ می چون که اصلا همین هم فرموندن جلوتر وقتی دو قایده رو تأسیس فرموندن گفتن آقا ما همین رو بعداً تطبیق خواهیم کرد بعد عدله خاص هر مسئله هم جدا خواهیم آورد آیات روایات و سایر تقریر هایی که میخواستن بیارن مرحوم شیخ انساری اول میان همون اول کار یه روایت ای میارن که حاوی چند قاعده است بعد اونا رو بحث میذارن خب بعضی بزرگانم هم ممکنه همین سطر رو به کار برده باشن پس از جهت دانشی مناسبه که قواعد عام کل با ابواب یا قواعد اکثر رو اول فقه بیاریم و بعد قواعد مربوط به هر باب رو اختصاصی هر باب رو در اول اون قاعده بحث بکنیم لا لایه لایه بحث استفاده بشه فرض بگیرید شما خیلی کتاب پنجاش جلدی بنویسید در ادامه عمر شریفتون که به هر حال قرار به اسلام مسلمی خدمت کنید انشالله ادو ادو اینا هم همه تأمین بشه توفیقات الهی یار بشه چه از جهت مادی چه از جهت ذهنی انشالله برید یه کار علمی خواهید بکنید کل فکر رو میخوایید یه دور بنویسید خب دست شما درد نکنه خدا توفیقات شما رو بیرز زاید اینا برای شوخی عرض نمیکنم. هم جمع یا بلکه میخوام ارز کنم که از میان شما به حال و امثال بندو شما و فوقه های در بیان به توفیقات الهی عمر بابرکت، عمر ست ساله، بیش از 100 سال به بزرگواران پرتوفی خدا انایت بفرماید توفیقاتی که دارن روز افسون بشه خدمت به اسلام مسلمین خب، اما این یه شیوه حالا میرسیم به نظام درسی اینالت نکته داخل پرانتزیه ولی این بحث قبلی اهمیت داشت چون که ما قرار قواعد رو استفاده کنیم جاش که معلوم نباشه انضباط علمی به هم میخوره ولی در نظام درسی لزومی نداره تا به انضباط دانشی باشه نظام درسی بر اساس اون اهم و مهم ها و ویژگی مخاطبان و ویژگی نظام درسی تنظیم میشه شما یک درسی به عنوان اصول فقد دارید این اصول فقد رو من امروز یک بار عرض کردم دوباره میخوام تأکید بکنم که یک زاویه بحثی رو شما زاویه روشی میتوانید به کار ببرید مقداری کارآمدی بحث شما بیشتر بشه و اون که مثلا در نظام درسی در نظام دانشی شما میاید اصول رو میخانید و تدوین میکنید تدریس میکنید قرارت یکایی که مباحثش اثبات بشه شما به مبنا برسید ادله مختلف رو اقوال مختلف رو بررسی کنید نقد و بررسی و نتیجه به یک مبنایی شما دست پیدا کنید اما اگر بخوایم نظام درسی درست بکنیم لزومی نداره همون نظم دانشی به کار گرفته بشه شما می توانید اصول فکر رو فقط کار بردی, به کار بردی اصلا با یه درسی ما داشته باشیم بدون استدلال فقط اقوال گفته بشه مبانی در هر بحث گفته بشه بگیم مثلا در بحث امر ما چند تا مبنا داریم آیا از امر صرفا طلب میفهمیم از امر مثلا فرض بگیریم فقط ند میفهمیم یا وجوب میفهمیم بعد بریم تطبیقش بکنیم در مسائل مختلف فقهی این یه درس کاربردیه که خلایش الان در کار ما هست لذا و از این کتبی که من عرض کردم کتاب آقای محمد سن کتاب قواعد اصول فقهی که یه قسمتاش رو خواندیم خدمت شما این از این جهت خوبه شما تازه بعض این کتب استدلال هم میارن ولی شما میتوانیدی مروری بکنید اون دستبندی اقوال رو داشته باشید و بعد اون تطبیقات و احیانا کتب و پجوش های دیگه که تطبیقات میپردازن بیشتر بپردازین این میشه یک درس یا ایک مطالعه جهتدار خب حالا در بحث قواعد هم این پرانتز بسته دامود اصول اصول رو بخوام تأکید کنم این کار رو بکنید شما حالا غیر از استطلال ها که در درس های خارجم دنبال خواهید کرد اما این جنبه اصول فقه کاربردی و تطبیقی بفهمید فهمید که این مبنا چه اختزایی داره در استنباد نتیجه عملیش چیه اگر اون یکی مبنا رو قبول کنید اون یکی چه تفاوتی در فتوه ایجاد خواهد کرد این رو پیگیر در بحث قواعد هم همینطور شما میتوانید فقط قواعد مشترک رو بیارید می توانید فقط قواعد اختصاصی یک باب رو بیارید مثلا برای رشته فقه و سیاست طبیعتا دو نکار نیاز هست تطبیق باید قواعد عام م... آمی که کاربورد سیاسی هم داره حد اونها رو کار بفرمایید و قواعد اختصاصی حالا تمرکز ما بر قواعد اختصاصی خواهد بود ولی نیاز هست قواعد مشترکی که تطبیقات سیاسی داره اونها رو هم پیگیر بشید و هر رشته دیگه فقه تبابه مثلا قواعد مشترک با تطبیقات مربوط به عالم فزشکی مثل لازرر و لاهرج و مواعث اینجوری تطویق بشه و قواهد اختصاصی خب این هم یک نکته مقدماتی برگردیم به بحثی که داشتیم ولی این نکتهش به نظر خیلی مهمه لازم نیست اون نظم دانشی رو شما داشته باشید هرچند اینجا اون نظم دانشی اهمیت داره برای هر بخش از فقه اون قواعد اختصاصی رو بخانید این نکته رو فرموش نکنیم که ما طبیعتاً در نظام های درسی اینا مقدمه برای این قسمت هم بود که فرض بگیریم شما ده عنوان درس فقهی پنج عنوان چار عنوان درس فقهی دارید آیا باید درس قواعد فقهی جدا از اونا باشه؟ طبق اون بیانی که من ارس کردم در نظم دانشی اختزاش اینه که مثلا اگر ما یه درسی داریم به عنوان فقه هل امن و الاستخبارات فقه اطلاعات و امنیت طبیعتا قواعد مربوط به اطلاعات و امنیت که بخشی از فق و سیاسه باشه یا اگر خود این رو یک رشته حساب کنیم حالا از بحث خارجه فرض بگیریم بخشی از فق و بگیریم قواعد مربوط به اطلاعات و امنیت در اونجا باید بحث بشه یه بحثی یه درسی ممکنه داشته باشیم به عنوان تحسیس نظام ساختارسازی تحسیس حکومت قواعد مربوط به ساختارسازی باید اونجا بیام اگر یه بخشی داریم یک درسی داریم به عنوان مثلا قواعد فقه المشارکه فقه شب قواعد مربوط به اون باید همونجا بیام خب چونگه اونجا قراره تطبیق بشه یعنی در قواعد خاص و مختص به تعبیر حالا قواد مختص به یک قسمت از یک باب مثلا باب فقه و سیاسه داریم خودش چند قسمت میشه که من خودم چند قسمتش میکنم یه قسمتش اون قسمت های فقه غیر سیاسی غیر حکومتی بخشید فقه و غیر حکومتی یه قسمت های مربوط به فقه فقه الولایه و فقه تاسیس حکومت یک قسمتی مربوط به فقه مسائل داخلی، یک قسمت مربوط به فقه روابط بین الملل و مسائل سیاست خارجی. یک قسمتی هم داریم که مربوط به همه اینا میتوانه باشه. اون قسمت قسمت تدابیر عام و, و تدابیر و مصالح عام که تو ساختار سازی مساله عام باید لحاظ بشه در سیاست داخلی در سیاست خارجی یه قسمت مقدماتی هم داشتیم که در فق... فلسفه فقه و هم که داریم اون مقدمه بحثه خب مثلا اهم و مهم باید کجا بره جاش در اون مساله عامه تدابیر عام و سایر موارد اما پس اگر اینطور باشه نباید ما درسی عنوانه و فقه و سیاسه بیاریم بلکه باید اول هر بحث بیاریم منطقیش اینه اما معمولا الان در فضاهای مختلف من ندیدم کسی این تقریر رو داشته باشه و چون این نتیجه گیری بکنه من بر اساس اون ویژگی و تنوعی که در قواعد هست یه نتیجه گیری دانشی و یک نتیجه گیری نظام آموزشی کردم در دانش قواعد عام اول فقه قواعد اختصاصی هر باب اولش قواعد مختص هر زیر مجموع، اول اون ولی همین در نظام دانشی هم طبیعتا باید بیاریم در نظام آموزشی ولی نظام آموزشی یک ویژگی های دیگه هم لحاظ می‌کنه کنه می توانه یه قسمت هایی رو جدا کنه در یه درس اختصاصی اینجا هم همینطور ولی طبیعتا استادی که میخواد یه قسمت از فقه و سیاسه رو درس بده طبیعتاً با این قواعد سر و کار داره اما برای اینکه اونجا کار شلوغ نشه بحثای دیگه خلاصه پررنگ بشه و یه مقداری توجه و اهمیت به قواعد معمولا میخوان پررنگ بشه درس جدا گذاشتن ولی ممکنه ما یه بازنگره در نظامات درسی داشته باشیم هرچند این پیشنهاد رو به راحتی خیلی جواب ممکن قبول نکنه اما شما با این ذهنیت میتوانید لزومن درس قواعد رو از جد دانشی و نظام آموزشی کاملا جدا حساب نکنید اصلش طبق این بیان من باید اول هر بحثی بیا فقط اون قواعد عام مربوط به کل فقه و سیاست هم درس مستقلی باشه چون اون یکی قسمت تقسیم شده دیگه خب این میتوانه تقریری باشه خب برگردیم به بحثی که در بحث ما مفهوم شناسی داشتیم بعد عرض کردیم زابطه و این نکتش چیه و بعد عرض کردیم که قواعد در کل فقه چگونه و در نظم دانشی و آموزشی باشند حالا یک مسئله بسیار مهم و اون اینه که قاعده فقهی داریم قاعده اصولی داریم فرق اینا چیه؟ جنب آقای اند... استاد اندلی اه... تعبیر رو از حضرت امام آوردن بردن نظر قرار میگیریم خدا... رزوان خدا بر حضرت امام که احیاگر و هر حال فقه و فقاهت در اینیت جامعه به صورت کامل از پیش و در تکمله بحث بوده تذکر خوبی رو هم جناب آقای لنگری دارن که ارکان خمسه بباید ببینیم شکل میگیره تکمیل میکنه تمایز ایجاد میکنه یا نه بحث من البته این نبود که دانش مستقله ما الان یه بخش از کل فکر رو داریم حالا ممکنه اینقدر توسعه پیدا کنه یکی به فقه و سیاسه بگه دانش به فقه و بگه دانش ولی در تلقی موجود یه بخش از فقه چون ماهیتاً اینها با هم تفاوت ندارن فقط یک بخشه کل فقه رو میتونیم یک بخش حساب کنیم من الان نمیخواستم میگم چند تا دانشه من میخواستم میگم که جای اینها کجاست خب برگردیم این تعبیر حضرت امام فرمودن ال... که فرق قای قاعده فقهی و مسئله اصولی یا قاعده اصولی چه توانه باشه قاعده فقهی گفتیم یه نگاه کلانی توش هست یک عمر کلیه خب قاعده اص... این تعریف قاعده تعریف لغوی هم بود به اون تعریف لغوی نزدیک بود یا همون بود یک اساس است برای چیزهایی که قراره برای این اساس بنیاد گذاشته بشه خب در اصول هم داریم این دوتا چه نسبتی دارن این مسئله برمیگرده به این که اصلا نسبت اصول با فقه چیست اصول دنبال چه چیزیست یکی از طاویر ساده ای که میشه به کار ببریم اینه که قرار اصول یک مبانی در اختیار ما قرار بده برای ورود به فقه آیا ظهور حجت است یا نه این مبنا در اختیار من قرار میده من که رفتم در داخل فقه طبق این مبنا باید استدلالهای فقهی رو بچینم و از دل اون محتوای فقهی و فروات فقهی رو در بیارم و استنباد کنم فقه آیا اصول آیا کارش ارائه روش بعضی از نکات روشی برای استنباد هم هست بعضی بزرگواران حالا این داخل پرانتز نکتر رو محسوب بدارید بعضی بزرگواران این مسئله رو به گونه میکنن که خلاصه اصول روش است برای فقه نه من به نظرم بعضی از نکات روشی در بحث در دانش اصول فقه وجود داره ولی سقل اصلی دانش اصول ارائه مبناست ولی این تعبیر لزومن در اصطلاحات و در تعاریف نیست ولی به نظرم بیان شفاف و روان است. شما میخواید ببینید که در مباحث الفاظ در مباحث ملازمات عقلی در بحث احکام ظاهری و اصول عملیه چه مبنایی دارید و بعد در, در فقه که اون مبنا برید به استنباد بپردازید من به جای الان قاعده تعبیر مبنا به کار بردم خب این یه مقداری فکر میکنم بحث رو, رو روان میکنه خب مبنا که بگیم شبیه قاعده هست یعنی مابون علیه ولی یه مقداری در عرف رایج میگیم آقا طبق این مبنا چه حکمی چه فبتوائی چه طبق مبانی اصولی چه راهی رو شما میرید چه مسئله رو میتوانید اثبات کنید چه مسئله رو نمیتوانید اثبات بکنید تعبیر دیگه میشه بگیم آقا قایده اصولی در بحث ما اینجاست که برحال اگر گفتیم قایده فقی قایده اصولی مسئله فقی مسئله اصولی اینجا باید مواظب باشیم که مسئله دوچار خلط نشه پس سوال اینه اگر اون تعبیر مبنا رو به کار ببریم میگیم آقا این مبنا رو در فق رعایت کن خب تعبیر قایده اصولی اینی که شما میخواید در فقه یک استنبات فقهی کنید اما در اصول قرار نیست شما استنبات فقهی بکنید خروجی استنبات فقهی حکم شرعی است حکم شرعی که شما قرار بهش عمل کنید اما قاعده اصولی به صورت غیر مستقیم به استنبات احکام الهی شرعی یا وظیفه عملی کشف وظیفه عملی منجر میشه من اینکه به صورت مستقیم خب اگر به صورت غیر مستقیم در کار استنباط و فقاهت کمک میکنه یعنی قواعد اصولی یک جنبه عالیت و ابزاریت و طریقیت داره لذا حضرت امام میفرماند القاعده الاصولیه هی القاعده الیه قاعده ابزاری است یک ساز و کار است یک پل عبزاریست هیل قاعدت العالی علتی یمکن انتقع کبرا استنتاج الاحکام الکلیت اول وزیفت الاملیه اولا ممکنه در اون طریق قرار بگیره نه که صد در صد چرا؟ چون که شما ممکنه یه قاعده داشته باشید لزومن از اون استفاده نکنید پس لذا یمکن حالا این کار نداری یمکن چی؟ یمکن انتقع کبرا استنتاج احکام ما اون ساده سادهی که من ارز کردم گفتیم این مبنا تکیه ما باشه برای استنباط احکام خب تکیه با گاه باشه یعنی چی؟ چجوری تکیه گاه قرار میگیره وقتی که کبرای اون قرار بگیره حالا چون اونجا تصریح بشه چه تصریح نشه شما میخواید حکم الهی رو استنباط کنید یا وظیفه عملی و حکم ظاهری رو به دست بیارید چه بگیم چه نگیم این مبنه و قاعده اصولی یه کب رویتی داره اینجا کب را قرار میگیره برای استنبات و استنتاج اون حکم شرعی یا حکم عملی پس به تعبیر ساده مبنای استنبات رو قرار میگیره مبنا قرار میگیره این چیه یعنی سغرا کبرا که میچینید یا بخوایید اگر دقیق همه کبراها رو همه سغراها رو شفاف مطرح کنید این میشه یه کبرا برای اون بحث فلمان مراد و بالعالیه مالا ها این ابزار این وسیله از نگاه استقلالی ما بهش نداریم بلی یونزروبه ها فقط این میشه واسطه استنباد پس خودش حکم میشه، قرار نیست لزومم باشه قرار پل باشه پس مالا, این مالا یونزروفی... ما یونزروفی ها میشه خود اون احکام مستنبت ولی این قواعد اصول میشه 19 رو بها این ابزاره و لا له شان الا فقط شأنیت طریقی داره قاعده فقهی چی فرمودن در کتاب مناهج وصول فرمودن اما القاعده الفقیه فهیا نفسها حکم الهی کلی خود قاعده فقهی حکم کلیش الهیه اون حکم اون قاعده اصولی لزوما این حکم الهی نبود میتوانست حکم مستنبت ما باشه حکم شرعی نبود بلکه اون واسطه بود برای اثبات این حکمون کلی اون الهی این قاید فقهی حکم کلی الهی است که تسبت و به احکام کلیه اخرى و تکون منظورم فیها خب ایشون میگن آقا از دل این قواعد فقهی یه احکام کلی دیگه در میاد خب طبق تعاریفی که ما داشتیم میگفتن گفتن که چیه امر کلی داریم و جزئیات یا به طبیر یکیش جزئیات موضوعات اون قضایی خب یه قضیه بود مبتدا خبر موضوع محمول نسبت موضوعش که آن بود یک حکمی هم به اون نسبت داده می شد مسادیقی داشت اون مسادیق سوال آیا مسادیقه کلیا یا غیر کلی اونجا آم بود اون جزئیات یا مسادیت دیگه کار نداشتش که خود اونها آمن یا خواست تا از اون آقاین حقوقدان و یا از این فقه های متاخر معاصر سنی آمدن تاکید کردن که اونها آمن اینجا هم حضرت امام چی میگن؟ میگن که این خودش یه حکم کلیه از طریق این احکام کلی به دست میام که البته این ویژگی رو داره که تکونو منظورن فيها خودش دیگه نگاه بالاصاله باید داشته باشیم بهش مورد نظره ولی تاکیدم میکنن اون خروجی کار اون جزئیاتی که این قضیه براش تطبیق میشه خود اونم کلیه فقاعده ما یوز منو به سیه یوز منو به فاسده و تو این قاعدتون یه واوزاف است قاعدتون کلیتون شرعیه یکون مفادها ها کون تلکل موجبتا موجبتن لزمان مثلا و وازون انهو یکون ایجاب و زمان من منظورن فیها خودش دیگه مورد نظرها این دیگه خودش تاکید تو تفاوت قاعد فقهی و اصولی اینه که این منظورن فیهاست اون منظورن به ها یون ذرو به های اینجا ما خودش رو به اونها یه حکم شرعی کار داریم کم و انا اون حکم کلیون اون تسبت و با احکام کلی اخر, اخر منظور و فیال کل واحد من الاغود الفاسد در القضایی که خود اونها هم چیستن حکم کلی هستن که احکام کلی دیگر دلش در می خب این تقریر حضرت امام بود پس یک نظر استقلالی و نظر عام بود یکی همین که گفتن که طریق جنبه عالیت داره برای استنتاج احکام شرعی یا احکام واقعی یا احکام ظاهری خب بعضی بزرگان دیگه تعابیر دیگه گفتند یکی از مهمترین تعریف ها مرحوم مت فرقها مرحوم نائینی اون تعریفی است که مرحوم نائینی آوردند فرمودند که اینجا ما یه احکام جزئی داریم یه قاعده فقهی داریم اینها اونجا می‌بینیم که تطویق میشه ولی مسئله اصولی چی؟ مسئله اصولی یک احکامی کلی راه میده ولی قاعده فقهی چی؟ یه تطبیقاتی داره که از دلش احکامی جزئی و موردی موردی در میاد. پس ببینید الان فرقی که اینجا معلوم شد حضرت امام که خیلی جا معمولاً نقد داشتن به مرحوم نائینی برخلاف مرحوم نائینی خروجی قواعد فقهی رو ببخشید. اینجا فرمودن قاید فکر. فقهی هم از دلش احکام کلی درمیا قاعده اصولی چی بود؟ قاعده اصولی یک کلی بود که کبرا می شد برای احکام کلی علایی پس خود این احکام فقهی هم کلی تصریح هم فرمودن که از دل قاعده درمیا اما مردم ناینی چی می میگن می آقا. از دل قاعده فقهی یک احکام جزئی خلاص درمیا من ان القاعدت القاعدت الفقیه تو قدم لنا من خلال تطبیقه ها احکام اون مسئله اصولی چی میگه نه مسئله اصولی ادلش احکام کلی درمیا به خلاف المسئله اصولی ها فه تو لنا احکام کلیه پس مسئله اصولی اون هم مقدمه برای استنتاج قرار میگیره اما خروجیش احکام کلیه خب اینجا وفاق هست بین مرحوم امام و آی, آی ناینی ولی خروجی قاعد فقهی رو یکی یک بزرگوار مرحوم ناینی خروجیش و احکام جزئی میگید حضرت امام کلی که هایی رو میزنن من بحث رو جمع کنم دوستان میخوان به نمازم برسن تطبیق میکنم مثلا قاعده تهارت میگه ازش از تطبیق میکنیم میگه این صبح تاهره است یه حکم جزئی مربوط به یک مستاق و حاضه احکام و جزئی خاصه به موارد معینه بعضی واراز رو میخوانم در انب یا مثلا در اصول میگیم حجیت خبر سقم خب این یه تطبیق میشه اون یه تطبیق تو بعد میفرماین که سمب بیانه به اندال قایدت الفقیت قد تو قد دمولن و حکم کلیه گاهی اوقات حکم کلی را میده پس تو او تطبیق اونجا بود بعد این تکمله اون میامد گفته بود یک حکام فرعی و وفی بعض الموارد چه کار میکنه تو قد و حکم کلیه نعیزم فیل موضوع کلی مثالم میزنن میگن اگر در تعارت فرعی یا وزخ یا ارنب ما شک کردیم و مسایر مسادق فنه هون نحکن به تهاره لقاعدت تهاره ول حکم به تهارفی مثل زالک کلی اینجا کلیه چونکه فقط با این فعر و اون فعر مصداقی کار نداریم بلکه این حکم کلیه خب اگه این طور باشه فرق قاعده اصولی باز هم باقی مان و مع hazardous یاب قلماءز و بین القاعده الفقیه و المساله الاصولیه محفوظا و ذلکه بنقل ها کزان ان القاعده الفقیه قد تعتینا حکما جزئیا و هو القالب و قد تعتینا حکما کلیا و هو نادر و هاذا به خلاف مسئله اصولی که مساله اصولی هم وارکم کلی میده حالا البته بعضی ممکن اینجا هم مناقشه‌ام یا منقش کسو کسی بیان مناقشه‌ام بکنه حالا این بحث دیگه است ولی ایشان از منظر خودشون قاعده اصولی همیشه خروجی حکم کلیه منطقه ببینید این حکم کلی اون نکته واسطه در استنباد هم هستا. اونجا واسطه در استنباد به معنا نیست درکه چی اون تطبیقه این لزوممن ممکنه تطبیق نباشه ل میفهم ان معاعض بین مسلات اصوله و قادتلفققیه ان مستن تجم مسلات وللیا لایکون الله حک من کلیان به خلاف مستن تجم قااهدتلفققیه که این دو قسمی فنده و یکون حکمن جزئیا و این صحت فی باز الموارد مواردلستا ج حاکمل کلیه یزن ال ان صلاحیت ها استنت جل حاکمل جزی هو هو معز صل برای استنبات حکم جزئی و غایقاتم برای حکم کلی این فارق میشه بین مسئله الاسولی حیثا این نها لا تسلو الا لستنتاج حکم کلی این هم در کتاب شریف فواید الاسول این عبارات آمده بود خب بحث مرحوم و باید رو هم بعدن اجال از خواهیم کرد و سلالله علا سیدنا و نبینا عبالقاسم محمد الله مثل وال اه طیل ار چخص شما از بحث مکوم و تعریف هوواردافافتی گذشتیم یا دآیدن به ششاره خواهید کرد الان نی مقداری دیگه فارد. خیلی جز بحث ها نیست دیگه حالا اگر نکته ای به فرمایید بهره میبریم م ف از بحث در حقیقت تعریف لفظی و اشاره به بعضی از مرفاهیم که تاقدید ایضاقیت هستن مثل اینکه که اشاره به امریکلی به اشاره به اصل داره اساس چیزی داره این مرفاهیم که مثل شد و در نهایت این که ما تفاوت قاعده و ضابط رو از به تفاوته یه بین این ها دهاشد از ارزبنده است که اشاره به مقایی مثل اساس و مثل اصل و اینها. ها آید در قواعد فقهی چون اساس یا اصل چنین تعاویلی تعاویل نسبی این اساس نسبت به چیز دیگری که بعد از اون هست تنجیده میشه لذا با تراجع به نسبی بودنش به نظره مثل هم قواعد فقهی با جده اساسن یعنی امودی که میشه به عنوان اساس قواعد فقهی در گرفت. هم خودشون برای اساس مراحل و موازین دیگر هستند و این سلسله ممکنه حتی در مرحله مجتری دیچه از آیه هاچ رشاد یه تحویلی دادن در برست فرسط موزافی می که فرسط یک در 13-14 عنوان در زیدی فرسط موزاف روز میکنن در مورد چیستی مثلا فقر برای اگر این چیستی رو ما تنصول در دسته در مورد چیستی خواهی به نظر مثل اولویشون بر نباشه این هم در مورد ماهیت صحبت میکنند در مورد صحبت میکنند در مورد ماهیت صحبت میکنند در مورد مقانی و مناشی صحبت میکنند یعنی این سیزد در چواردن در نهایت در برخی از ملاحظات به آقای بود همه با مورد بهشون تفکیل این بتونه احتمالا کمک بکنید رو ببین پیشتما درست میکنید بله و دیگه تحریف به زد همی که کارکت داشته باشه یعنی که قبارد فقریه چه چیزی نیست مثل به اجمال و اشاره شما فرمودید این یعنی تفکیق از قبارد فقریه تفکیق از مسائل تفکیق از قبارد اصولی تفکیق از مسائل اصولی تفکیق از مسائل فقریه به نظر می رسه اگر اینها رو بتونیم به نحوه تحصیل و مشخص چون ممکن خود قواهد فرحی اگرانا مثلا در تحریف ما نشد کار انجام داد یا باشه در این گونه مرواد تاریخ به زد به نظر می رسه بیتونه تا بیتونه تا بیتونه. می توانیم کار آمد باشه کنم یه که به می که عملا یکی مقداری در واقع زد رو اگر قاعده اصولی بگیریم در واقع این اشارات بزرگان میتوانن استاق این باشه قبلش من اشاره کنم تا بزرگوارا نرفته شاید فرمودن فایل ها این نباشن دنبال این نباشن که مثلا بگیم آها داریم تعریف می ولی عملا متضمن این هست وقتی که میگن فرقش با قاعده اصولی چیه بر اون قسمتم درن یه تأکیدی میکنن ولی دیگه زد چه چیزی می توانیم بگیریم یه اون قاعده در واقع ویژگی ها که میگن معلف رو که میگن نکته مثلا استنتاجی بودن قاعده اصولی که او در طریق استنباد قرار میگیره بعضی قواعد که تطبیق میشن به یه معنی عام در طریق استنباد قرار میگیرن ولی در اصول لزوما استنتاج تطبیق نیست بلکه یه کبراسغرایی چیده میشه که گایی خروجیش متفاوت از اون کبراسغرای قبلیه اما در قواعد فقهی تطبیقش همون خروجی رو داره در یک حسه خاص اون یک حسه عامیه مجموع حساسیه در یک مستاخ فقط تطبیق میشه وقتی میگن مثلا فلان چیز نجسه هست فلان موضوع عام حکم نجاست برش بار میشه بر مستاخ که تطبیق میشه فقط تطبیقه ظاهرت استدلال داره ولی استدلال به معنایی که در استنتاج اصولی و استفاده از قواعد اصولی برای فقه هست اون استنتاج نیست حالا اینکه فرمودید تعریف به ذات بعد ببینیم آیا ابهامی هست یا یعنی نه اون تعریف گویا نیست یا نه ولی فل جمله اینکه با قاعده اصولی هم مقایسه کنم ممکنه مثلا یه سنخ شبیه این بیان بگیریم اما اون مواردی که فرمودید مالا ما طبیعتا به اندازه مورد نیاز بعضی از کلی حالا اون 15 عنوانی که فرمودید برای موارد فلسفه قطعا ناظر به اون محتوای خاص این تیترها و این محورها باید طبیعتا لحاظ بشه حالا به اندازه‌ای که ما یه مقدار جنبه مقدماتی بحثمون داره طبیعتا اون مقداری که کمک بکنه خوب هست ولی متناسب با اینجا حالا اون مقدار چون که باید داریم رو تطویق مباعث فقه و سیاسه این رو هم حالا تا جایی که حالا ذهن ما یاری بکنه خدمت شما اساس نیاز بکنیم که کمک به بحث میکنه چشم ولی حالا لزوماً در پونزه عنوانی که اونجا بحث شد نه ما در ذهن با جناب استاد رشاد این بحث رو داریم که یه تدوین کتاب قرار داشته باشیم از بعد از عید همین بحث رو پیگیر بودیم هفتگی جلسات ثابتی داریم